اگر چیزهای گران قیمت نمی توانند چندان ما را شاد کنند، پس چرا به این شدت مجذوب آنها هستیم؟ به دلیل نادرست، شبیه خطای فردی مبتلا به میگرن که یک طرف جمجماش را سوراخ می کنند. زیرا اشیای گران قیمت ممکن است راه های معقولی برای برآوردن نیازهایی به نظر برسند که ما آنها را درک نمی کنیم. اشیاء در بعد مادی ادای چیزی را در میآورند که میخواهیم در بعد روان شناختی به دست آوریم. ما باید در افکار خود تجدید نظر کنیم ولی فریفه قفسه های جدیدی میشویم. ژاکتی کشمیری را به عنوان جایگزینی برای همصحبتی با دوستان میخریم. سردرگمی و آشفتگی ما تنها تقصیر خودمان نیست در نادرست ما از نیازهایمان را به قل پیکور باورهای باطل اطرافیانمان بدتر می کنند. باورهایی که سلسله مراتب طبیعی نیازهای ما را منعکس نمی کنند و بر تجمل و ثروت و تنها به ندرت بر دوستی، آزادی و تفکر تاکید میکنند رواج یافتن باورهای باتل بر حسب تصادف نیست این به سود شرکت های تجاری است که سلسله مراتب نیازهای ما را تحریف کنند تا دیدگاهی مادی نسبت به خوبی را ترویج کنند و خوبی غیرقابل فروش را کم اهمیت جلوه دهند و ما از طریق همنشینی موزیانه چیزهای زائد با دیگر نیازهای فراموش شده خود فریفته و گمراه میشویم. ممکن است سرانجام جیپی به ولی به نظر اپیکور به دنبال آزادی بوده ایم ممکن است نوشیدنی اشتها آوری به ولی به نظر اپیکور به دنبال دوستی بوده ایم. ممکن است لوازم گران قیمت آبتنی بخریم ولی به نظر اپیکور تفکر است که برای ما آرامش برمغان می آورد. برای مقابله با قدرت تصاویر تجملی اپیکوری ها اهمیت تبلیغات را تصدیق کردند. حدود سال 120 بعد از میلاد در بازار مرکزی اوینواندا شهری با ده هزار نفر جمعیت واقع در گوشه جنوب غربی آسیای صغیر، ستون سنگی عظیمی به طول 80 متر و ارتفاع تقریبا چهار متر بنا شد و شعارهای اپیکور برای جلب توجه خریداران بر روی آن حک شد. غذاها و نوشیدنی‌های تجملی به هیچ وجه منجر به لطمه ندیدن و تندرستی بدن نمی‌شوند. باید بیهوده بودن ثروت بیش از حد طبیعی را مثل آب برای ظرفی بدانیم که آنقدر پر است که سرریز می‌کند ارزش واقعی نه با تئاترها و حمام‌ها و عطرها و روغنها بلکه با علم طبیعی حاصل می‌شود پول این دیوار را دیوگنس یکی از شهروندان ثروتمند اوینواندا پرداخته بود که چهارصد سال پس از افتتاح باغ در آتن به دست پیکور و دوستانش میخواست رموز خوشبختی را که در فلسفه اپیکور کشف کرده بود با همشهریانش در میان بگذارد. او در یک گوشه این سنگ نوشته، چنین نوشت: من در شامگاه زندگانیم هستم و نمی‌خواهم جهان را ترک کنم پیش از آنکه سرودی در ستایش اپیکور به دلیل سعادت و لذتی که آموزش‌های او نصیبم گردانیده، سر داده باشم. من میخواهم به کسانی کمک کنم که در حال حاضر تند درست هستند. اگر در این زمان فقط یک یا دو یا سه یا چهار یا پنج یا شش نفر حالا روز بدی داشتند، باید با ایشان تک تک سخن میگفتم. ولی چون اکثر مردم از بیماری مشترکی رنج میبرند که مثل تاون تا همه گیره است و درک نادرستی از امور دارند و چون شمار آنها رو به افسایش است. زیرا بر اثر رقابت و همچشمی متقابل بیماری را مثل گوسفند از یکدیگر میگیرند خواستم از این سنگ نوشته برای تبلیغ علنی داروهایی استفاده کنم که رستگاری را برمغان میآورند روی این دیوار عظیم آهکی هزار کلمه نوشته شده بود که تمام جنبه های تفکر پیکور را تبلیغ و بر اهمیت دوستی و تحلیل استراپ ها تاکید می کرد. به شهروندانی که در مغازه‌های های آندا خرید می‌کردند، به تفصیل هشدار داده شده بود که انتظار نداشته باشند این کار خوشبختی زیادی برای آنها برمغان بیاورد. اگر ما چنین موجودات تأثیرپذیری نبودیم، تبلیغات اینقدر رواج نداشت. وقتی تبلیغات زیبای روی دیوارها را رو می‌بینیم، به آن کالاها علاقه‌مند می‌شویم. و وقتی درباره آن کالاها ها اصلاً صحبتی به میان نمی آید یا از آنها تعریف نمی کنند، علاقه خود را به آنها از دست می دهیم. لوکرتیوس از این امر ناراحت بود که آنچه می خواهیم، بنابر شنیده ها و شهادت حواس خودمان انتخاب می شود. متاسفانه در زمینه تصاویر مطلوب کالاهای های تجملی و محیط های باشکو هیچ کم وجود ندارد. ما چندان تشویق نمیشویم که به های معمولی توجه کنیم. هایی مثل بازی کردن با کودک، صحبت کردن با دوست، دراز کشیدن زیر آفتاب بعد از ظهر، به سر بردن در خانهای تمیز، خوردن پنیری که روی نان تازه مالیده شده. برایم یک کوزه پنیر بفرست تا بتوانم هرگاه خواستم، زیافتی برای خود برپا کنم. در صفحات مجله زندگی اپیکوری چنین چیزهایی مورد تجلیل قرار نمیگیرند. هنر میتواند به تسیه این سوگیری کمک کند. لوکرتیوس دفاع هوشمندانه پیکور از سادگی را تقویت کرد. زیرا در شعری عالی به زبان لاتین به ما کمک کرد تا لذتهای چیزهای ارزان را احساس کنیم. ما در میابیم که ملزومات طبیعت جسمانی ما واقعا معدودند. به همان اندازه‌ای که برای رفع درد و افزایش لذتهای بیشمار برای ما لازم طبیعت خواستار چیزی خوشنود کننده تر از این نیست شکایت نمی کند اگر نرگوش و کنار خانه غلامان مشعل به دستی برای روشنی بخشیدن به زیافتهای دیرهنگام دیده نشوند چه اهمیتی دارد اگر تالار با نقره ندرخشد و با طلا برق نزند و صدای اود در ستونهای حکاکی و تلاکاری شده نپیچد. طبیعت جای خالی این تجملات را احساس نمی کند. زیرا مردم می در کنار دوستان خود روی علف نرم در کنار رودی روان و زیر شاخه های درختی بلند بیاسایند و با حزینه اندک به جسم خود لذت بخشند اوزا از این هم بهتر می شود اگر هوا به ایشان لبخند بزند و در آن فصل علف سبز را به گلها بیار سنجش میزان تاثیر شعر لوکرتیوس بر فعالیت‌های تجاری در جهان یونانی رومی دشوار است. دشوار است که دریابیم آیا تبلیغ بزرگ روی سنگ نوشته اوینو آندا به مشتریها فهمان به چه چیزی نیاز دارند و آیا از خرید چیزهای غیر ضروری دست کشیدند یا نه. ولی طبعا مبارزه تبلیغاتی پرساز و برگی از نوع اپیکوری می‌تواند سقوط اقتصاد جهانی را تسریع کند. چون به نظر اپیکور اکثر کسب و کارها نیازهای غیر ضروری مردمی را تحریک کنند که قادر به درک نیازهای واقعی خود نیستند میتوان با خداگاهی و درک بیشتری از معقوله سادگی میزان مصرف را به شدت کاهش داد اپیکور از این امر نگران نبوده است وقتی بر اساس هدف طبیعی زندگی بسنجیم فقر ثروتی عظیم است ثروت نامحدود فقر عزیم. این قطعه ما را به انتخابی توجه می دهد در یک طرف جوامعی که نیازهای غیر ضروری را تحریک می کنند ولی در نتیجه به توانایی اقتصادی زیادی دست پیدا می کنند. و در طرف دیگر جوامع اپیکوری که نیازهای مادی ضروری را برآورده می سازند ولی هرگز نمی استانداردهای زندگی را از سطح امرار معاش فراتر برند در جهان اپیکوری هیچ بنای باشکوهی، هیچ پیشرفت تکنولوژیکی در کار نخواهد بود و تجارت با کشورهای دوردست چندان مشوقی نخواهد داشت در ای که نیازهای مردم محدودتر است، منابع معدودی نیز وجود خواهد داشت و با این همه اگر می به اپیکور عقیده داشته باشیم چون این ای بدبخت نخواهد بود لکرتیوس، این انتخاب را به دقت بیان کرد در جهانی فارغ از ارزش های اپیکوری بشریت همواره قربانی رنج فراوان بی هدف و بی سمری است که به دلیل ناتوانی در درک حد و مرز تحصیل ثروت و عجز از پرورش لذت اصیل زندگی را با نگرانی های بیهودهی مسترب می سازد. ولی در این حال همین ناخرسندی است که زندگی را هموار پیش برده به سوی دریاهای بحناور. می میتوانیم پاسخ پیکور را تصور کنیم. شهامت ما در حرکت به طرف دریاهای بحناور، هر قدر هم چشمگیر باشد، باز هم یگان راه ارزیابی ارزش ها و امتیازات ها لذتی است که ایجاد می کنند. ما به لذت متوصل می شویم، با استفاده از احساس به عنوان معیار خود، برای داوری درباره تمام خوبی ها. و چون افسایش ثروت جوامع تضمین کننده افزایش افسایش خوشبختی به نظر نمی رسد اپیکور می گفت نیازهایی که به وسیله چیزهای گران قیمت براورده می شوند ممکن نیست آنهایی باشند که خوشبختی ما وابسته به است بخش ششم خوشبختی فهرست دارائی های لازم یک، یک کلبه، دو، دوستان، سه، اشتناب از بالا دستی ها، ارباب منشی، همچشمی و رقابت تنگاتنگ چهار، تفکر، پنج، تناسخ مدونای جیووانی بلینی، متعلق به گالریاد ریا در ونیز که حالت اندوهگین و زدش حس شوخ طبیعی و صرافت تبه او را میپوشاند کسی که لباسی از الیاف مصنوعی می پوشد که از ارزانترین فروشگاه های بزرگ زنجیره ای خریده است ممکن است دستیابی به خوشبختی دشوار باشد ولی موانع آن عمدتا مالی نیستند